Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world. This holiday. <laughs> Thank you. And eid -e Shoma Mubarak. Aid ro be millet i Iran tabrik mi amma dar hamon tabrik millet i Iran ro tarif dar terroreist donbal salaha <laughs> hasteii waz in qadir chishaa muttehamdhi. Shomore jadid amrika az lahze که به ریاست جمهوری رسما رسید و نطخ کرد به ایران و دولت جمهوری اسلامی اهانت کرد چرا حتی ادبیات هم عوض نشده است اگر راست میگی تغییری انجام گرفته از کوین این تغییر چرا چیزی دیده نمی شود من این رو به همه میگم مسئولین آمریکایی هم بدانند دیگران هم بدانند ملت ایران را نمی شود فریب داد نمی شود ترسون قبل انقلاب دولت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی بدرفتاری کردند اولین خاری که انجام گرفت کمک به حرکت های تجزیه طلب و تروریسم در همین شرورهایی که در مناطق مرزی ایران و پاکستان هستند شنودهاشون داریم با عناصر آمریکایی مرتددن چراغ سبز دادن به صدام 8 سال جنگ رو بر کشور ما تحمیل کرد در آخر جنگ هواپیمای مسافربری ما در آسمان خلیج فارس رو ساقط کرد تصرف به حرز دارایی ها و اجناس ایران علیه من علیه کشورمون تضییقات تسمانه کردم از آمریکایی ها چند سال قبل گفت ریشه متی ایران رو باید کرد ادبیات هم عوض نشده بیاید مذاکره کنید آارت تغییر میدن خب این تغییر کجاست؟ چی تغییر کرده؟ دشمنی شما با ملت ایران تغییر کرده کو علامتش دارایی ملت ایران رو آزاد کردی دفاع بی و شرط از رژیم سعینشی رو کنار گذاشتید تعیم های زالمانه رو برداشتید و جنتراکنی و اداتها و تبلیغات سو علیه این ملت بزرگ؟ و مسکولین مردمی اون دست برداشتی اگر دستی دراز شده باشه که یک دستکش محمل روش باشه اما یک دست چودنی باشه این همون رابطه گرگومی شه که امام گفت رابطه گرگومی شما نمیخواهیم یود رابطه برای یا وسیله ای بوده است برای نفوذ در قشرهای مستعد مزبوری در اون کشور حالا میشه آقایون و راجی کردن و حرف زدن و استلال کردن که نبود رابطه با امریکا برای ما مضر نه آقا نبود رابطه با امریکا برای ما مفیده اون روزی که رابطه با امریکا مفید باشه اول کسی که بگه که رابطه رو ایجاد میکنم خود بنده هست.